سوره مبارکه کهف آیه صد همگی با این آیه آشنا هستید صد و 104. و صد و چهار قول حل کن بل اعمالا ای پیغمبر بگو میخواید خبر بدم به شما اعلام کنم بفهمونم شماها رو به این مسئله آگاه کنم به چی بل اخسرین اعمالا یک خاسر داریم یک اخسر خیلی فرق داره خود خسران کسی که خاسر است خسران ورزیده خب این با توجه به معنایی که همتون آشنایید و هم داشتیم کسی که خسران کرده یعنی از ضرر هم بالاتره چون در زرر سرمایه حفظ میشه منفعت حاصل نمیشه ولی در خسران سرمایه از دست میره حالا اخسرین کی میگه پیغمبر از طرف خدا خدا میفرماید قول بگو پس معلومه که این از طرف پروردگاره آیه قرآنه خبر بدم اگر پیغمبر اسلام نبی است نبی خبر میاره از طرف خدا نبوت خبرآوریه. اون خبرهایی که به وسیله اون خبرها ما هدایت بشیم سعادتمند بشیم و بدونیم باید چه کار کنیم حالا یکی از این خبرهایی که پیغمبر میخواد از طرف خدا برای ما بیاره اینه که اخسرین رو اخسرین اعمال رو که اگر ما عامل به اون عمل شدیم اخسریم زیانبار ترین زیانباری ها رو مرتکب شدیم اینو پیغمبر از طرف خدا به ما خبر بده میگه چی؟ قل حل ننبع کم بل اخسرین اعمالا آیه صد و چار میدونی میدونوی اونایی که زل سعی هم فی الحیات دنیا و هم یحسبون انهم یحسنون سنعا اما از این جهل مرکب چه جهلی؟ تمام سعی و تلاششون برای تو همین معبر و این کانال بودنه و از این وقت چی گمان میکنن که دارن بهترین کار رو میکنن یعنی دوتا خصیصه در این آیه شریفه اشاره شده که با توجه به این دو خصیصه کسانی که اخسرن و اخسرین اعمال داره معرفه میشه دو خصیصه چیه؟ یک تمام تلاششون تمام کارشون تمام زحمتشون برای همین نشعه است یعنی اگر منو وارد این معبر کردن معبر است مغر نیست امیرالمؤمنین تو اهل بلاغه از دنیا دار و ممر و با دار و مغر خذو من ممرکم ل مغرن. یه ممره، یه جای عبوره، یه جای گذراست. خب حالا قرآن در سوره که آیه 103 و 104 می‌فرماد که پیغمبر قل بگو خبر بدم به شما آگاهتون بکنم می این خبر از عالم وحی دریافت کنید که چه کسی در این عالم داره کار میکنه، داره عمل میکنه، داره تلاش میکنه ولی عملش، کارش، تلاشش مستاقه اغسرین اعمالاست با توجه به کلمه اخسر میگه یک تمام تلاشش برای همین معبره زل سعيهم فقط برای حیات دنیا تازه خیال میکنه داره کار خوب میکنه خب یعنی چی آیات دیگه فکر کنم همینو برای ما بیشتر روشن بکنه ما معمولا وقتی در معبر دنیا که بین عالم بالای معنوی و عالم اخروی است قرار می گیریم سفارشی که در آیات به ما شده که الان نمونه هاشو خدمتتون میخونم اینه که تمام تلاش شما برای لقاء رب باشه پس اگر کسی به جای اینکه تلاششو برای لقاء رب قرار بده برای خود این دنیا قرار بده این اخسرین اعماله. پس برای اینکه اخسرین اعمال نباشه چیه؟ بعد هر تلاشی که در این دنیا میکنه هر تلاشی که داره در این دنیا میکنه اون تلاش در راستای لغا رب باشه. و بدون تعارف آقایون خانم ها حالا آیاتو میخونم روایاتو با هم میخونیم بحث میکنیم. اگر قرآن فرموده لیسل انسان الا ماسا دنیا داره تلاشه ما تو دنیا تنبلی و بیحالی و کار نکردن و فعالیت نداشتن نداریم باید تلاش کنیم ولی تلاشی که خسران توش نباشه ضرر و زیان توش نباشه و این زحمت زحمت مثمر سمر باشه طبق آیات و قرآن اون زحمتی است که برای لقاع رب باشه در این دعای الان خدمتون خوندم فرمودن گرچه شما دنیا رو دار تلاش میدونید و باید تلاش کنید اگر تلاش کردید جالبه نمیفرماید اکثرین اعمال کسانی‌اند که دزدی کردند اکثرین اعمال اون عملی است که مثلا آدمکشی توشه اینا همه حرامه همه گناه معصیته میگه تمام تلاش برای دنیا باشد یعنی طبق این آیه شریفه حالا آیات دیگه میخونم ببینید اینا دیگه آیات قرآن دیگه نگید فلانی داری میگیری کارو مشکل میکنی من دارم آیه رو براتون میگم یعنی طبق این آیه اگر من نماز بخوانم آدم نمی کشم. نماز میخونم ولی نمازم برای اهداف دنیاوی باشه چون تمام سعی برای حیات دنیاوی است از طبق این آیه من مستاق اکثرین اعمالم یه توضیح هم اینجا بدم قبل از این آیه آیا دیگر رو بخونم دقت بفرمین مثلا ما در روایات داریم روزه باعث سلامتی بدن میشه سوموم هسته اما آیا دستور به روزه برای عبادت است یا برای سلامتی جسم من میتونم روزه بگیرم برای عبادت خب ضمنا سلامتی جسمم حاصل میشه ولی اگه روزه گرفتم به قصد سلامتی جسم اینجا مستاق اکثرین اعمال هستم یا نه یعنی این عمل عملو فقط برای دنیام قرار دادم من برای آخرت نکردم برای لقاء رب نکردم و حال اینکه من بناس اگه روزه میگیرم روزه رو برای خدا بگیرم لذا اگر از این دید ما بخوایم نگاه کنیم میبینیم که وای کارهایی که صبح تا شب ما انجام میدیم همون کارایی که به عنوان یک عمل عبادی شاید مثلا خوب داریم حساب میکنیم وقتی یک کمی حساس میشیم گرگراس مست گیرن پس هرانچه هست گیرن میبینیم به همه اعمال ما برمیخوره چه کنیم؟ راحل چی به ما گفتن؟ اگر بناس توی اون وادیه تعالی قرب حق و لغا رب بخوایم قرار بگیریم خب این آیه فرمود که خبر بدم شما را آگاه بکنم که اکثرین اعمال چیه که تلاش برای دنیا باشه فقط برای دنیا